فصل نهم. اما باید با یک سکه یک سنتی شروع کنید سفر هزار مایلی با یک قدم کوچک آغاز می شود زرب المثل چینی من داستان آن سکه یک سنتی را که هر روز ارزشش دو برابر میشد برای صدها و هزاران نفر تعریف کردم. مردم اغلب پس از شنیدن این داستان چیزی شبیه این میگویند وای واقعا شگفتانگیز است اینکه میتوان از هیچ چیز شروع کرد و ثروتی فوقالعاده به دست آورد. اما این چیزی نیست که آن داستان بیان می کند. پسر آن مرد ثروتمند با هیچ چیز شروع نکرد او با یک سکه یک سنتی شروع کرد. بله، اما اینکه چیز مهمی نیست البته که او با یک سکه یک سنتی شروع کرد اما اساسا شبیه این است که با هیچ چیز شروع کرده است. نه، اینطور نیست. این شروع کردن با یک سکه یک سنتی است، ممکن است که ناچیز به نظر برسد اما حالا احتمالا دیدگاه متفاوتی درباره کلمه ناچیز دارید، اینطور نیست؟ حقیقت این است که آن سکه یک سنتی ممکن است خیلی ناچیز باشد با هیچ چیز بسیار متفاوت است در حقیقت همه تفاوت نیز از همان به وجود می آید همیشه از جایی شروع می شود مطمئنم که تا اینجا به ایده اصلی این کتاب پی بردید برای انجام دادن کارهای بزرگ نیازی به جهش فوق بشری نیست شما می توانید هر موفقیتی را که به دنبالش هستید خلق کنید، هر شاهکار و پیروزی را که می خواهید به دست آورید و هر رویایی را که در سر دارید تحقق بخشید و برای انجام دادن این کارها لازم نیست کارهای غیر ممکن و خارق العاده انجام دهید، اما ناگزیرید که دست به کار شوید، شما باید با یک سکه یک سنتی شروع کنید. موفقیت از عالم قیب ظاهر نمی شود، نمی توان آن را با سحر و جادو از عالم قیب ظاهر کرد یا آن را از طریق قول چراغ جادو به دست آورد. موفقیت از یک شروع کوچک حاصل می شود و اغلب از شروع چنان کوچکی به دست می آید که نامرعی به نظر می رسد و بسیاری از مردم از آن قفلت می کنند. به هر حال باید یک نقطه شروع وجود داشته باشد. برخی از بزرگترین شرکت های دنیا کارشان را با کمی بیشتر از یک سکه یک سنتی آغاز کردند. در سال 2003، یک دانشجوی سال دوم دانشگاه هاروارد به نام مارک در حالی که در اتاق خوابگاهش نشسته بود وبسایتی به راه انداخت که به سایر دانشجویان امکان میداد تا به طور همزمان عکس‌های دو دانشجوی دیگر را با هم مقایسه کنند و رأی دهند که کدام یک زیباترند. او این پروژه کوچک را فیسمش نامید و همین کار او تقریباً موجب اخراجش از دانشگاه هاروارد شد. امروز سالها بعد از آن ماجرا وبسایت او بیش از یک میلیارد کاربر دارد و ماهیت ارتباطات جهانی را دگرگون کرده است. حالا مارک زکربرگ یکی از ثروتمندترین و با نفوذترین افراد دنیا محسوب می شود. وقتی که ایده فیسمش برای اولین بار به ذهن زوکربرگ خطور کرد شاید بیشتر یک شوخی خام و نارس بود تا یک ایده جدی کسب و کار. اما نکته اینجاست که او با یک ایده شروع کرد. پدیده چند میلیارد دلاری فیسبوک از قیب نیامد بلکه با یک سکه یک سنتی شروع شد. سی سال قبل از اینکه زوکربرگ در هاروارد به دردسر بیفتد یک معلم انگلیسی جوان و بیپول به نام استیو تلاش می کرد تا زندگیش را با نوشتن داستان برای مجله بگذراند. او شروع به نوشتن داستانی درباره یک دختر دبیرستانی دردسر ساز کرده بود اما بعد از نوشتن سه صفحه اول داستان گمان کرد که داستان خوبی نشده و نوشتههایش را به درون سطل زباله انداخت. اصلاً چرا داستان دیگری بنویسد که به مجموعه بزرگ داستان‌های رد شدهاش اضافه شود روز بعد هنگامی که همسرش مشغول تمیز کردن اتاق استیو بود به صورت اتفاقی توجهش به تعدادی کاغذ مچاله شده جلب شد او آن کاغذها را برداشت و صاف کرد خاکستر سیگار را از رویشان پاک کرد و بعد از خواندن دوباره روی میز کار استیو قرار داد او به استیو گفت احساس می کنم در لابلای این صفحات چیزی وجود دارد چیزی که شاید ارزش به پایان رساندن داشته باشد حق با او بود استیوان داستان را به پایان رساند و حق نشر آن کتاب را نزدیک به نیم میلیون دلار فروخت داستان آن دختر دبیرستانی دردسرساز به نام کاری باعث موفقیت او در حرفه نویسندگی شد ستیون کینگ با رمانی که از سطل زباله بیرون کشیده شده بود به یکی از موفقترین نویسندگان قرن بیستم تبدیل شد. چیزی که تابیتا کینگ در سطل زباله پیدا کرد ممکن است یک سکه یک سنتی کثیف و تیره بوده باشد اما هنوز هم یک سکه یک سنتی بود. اجازه دهید بیست سال به عقبتر برگردیم. به یک روز سرد پاییزی در دسامبر 1955 وقتی که خیات 42 ساله گمنام اهل منتگومری تصمیم گرفت که دیگر خفت و خاری را تحمل نکند. بعد از یک روز کاری سخت و طاقت فرسا بسیار خسته بود. بیش از همه اینها از رفتاری خسته بود که دیگران با او و افراد شبیه او داشتند. بنابراین وقتی در اتوبوس به او گفته شد که سندلیش را به یک مسافر سفید پوست بدهد امتناع کرد. حتی وقتی که راننده اتوبوس او را به بازداشت شدن تهدید کرد خم به ابرو نیاورد آن تهدید تو خالی و بیاساس نبود او بازداشت و سپس مجرم شناخته شد و به دلیل تخلف از قانون شهری جریمه شد اما این موضوع جرقی برای آغاز یک جنبش حقوق مدنی جدید بود در روز محاکمه آن زن، انجمن تازه شکل گرفته بهسازی منتگومری کشیشی جوان و نسبتاً گمنام به نام مارتین لوترکینگ جونیور را در مقام سخنگویش انتخاب کرد. کسی که آغازگر جنبشی شد که یک دهه بعد قانون تبعیض نژادی را منسوخ کرد. روزا پارکس همچون یک سکه یک سنتی بود. حالا اجازه دهید آخرین بخش از سفر زمانیمان را انجام دهیم. زمانی بود دقیقاً چند سال پیش که یک قطره کوچک ژلاتینی با کمک یک نیروی بلقوه مخفی شروع به زربان کرد. اندکی بزرگتر از یک نقطه و زخامت یک اسکناس یک دلاری بود. در آستانه قدرت دید انسان. اگر کمی کوچکتر بود برای چشمان غیر مسلح نامرئی میشد. این قطره هرچند کوچک و ناچیز بود و می توانستید 20 از آنها را روی سر سوزنی قرار دهید فرمول شیمیایی پیچیده ای داشت که اگر روی کاغذ چاپ میشد بیش از 500 هزار صفحه میشد. در حقیقت این فرمول یکی از سازمان یافته ترین و پیچیدهترین ساختارها در تمام جهان است. در طی نه ماه آینده و مرکب شدن به صورت خفیف این قطره کوچک ژلاتینی قبل از پاگذاشتند به این دنیا به بیش از سی هزار میلیارد سلول تبدیل می‌شود و هنگامی که اولین نفسش را می‌کشد به شیون و زاری می‌پردازد این قطره به شما تبدیل خواهد شد شما همچون یک سکه یک سنتی آغاز شده اید افکار شما همچون سکه جادویی ارزشمند هستند تصور کنید به جای یک سکه یک سنتی که هر روز ارزشش دو برابر می شود، ارزش سلامتی شما یک سنت افزایش می و سپس دو سنت، بعد چهار، سپس هشت و همینطور ادامه می تا به ده میلیون دلار برسد. اگر کاری بود که انجام دادن آن موجب نشد به اندازه ارزش یک سنت احساس بهتری داشته باشید، آیا آن کار را هر روز انجام می دادید؟ مثلا کمی نرمش ملایم، یک کیلومتر پیاده روی تند پانزده دقیقه دویدن روی تردمیل، کاری که ضربان قلبتان را اندکی افزایش میدهد نه ورزش خیلی سنگین. و پاداش شما صبح روز بعد وقتی که از خواب بیدار میشوید آیا احساس بهتری دارید ؟ واقعا نه. قابل ملاحظه نیست. شاید به اندازه ارزش یک سنت. به زحمت به تلاشش می و بعد از گذشت یک هفته شما به اندازه 64 سنت احساس بهتری دارید. این هم چیز مهمی نیست. شما مجبور بودید که آب و هوای بارانی را تحمل کنید با ماهیچه های خسته پیاده روی کنید و برنامه خبری مورد علاقتان را تماشا نکنید. و بعد از همه اینها اینطور به نظر نمیرسد که احساس شما ارزش یک میلیون دلاری داشته باشد. آیا ارزشش را داشته است؟ شاید نه. اما چه می شود اگر در هر صورت انجام دادنشان را ادامه دهید؟ آیا سرانجام احساسی با ارزش یک میلیون دلار خواهید داشت؟ یک میلیون دلار نه؟ بلکه ده میلیون دلار اما به هر حال باید با یک سنت آغاز کنید. حالا تصور کنید این سکه یک سنتی دانش شماست. اگر به شما می گفتم خواندن کتاب بیاندیشید و ثروتمند شوید از ناپل اونهیل زندگی شما را دگرگون خواهد کرد، آیا همین امروز می و آن را تمام و کمال می یادآوری میکنم می کنم که این کتاب حدود 250 صفحه است و خواندنش نیز خیلی آسان نیست. یا یک کتاب فوقلاده دیگر، مانند کتاب هفت عادت مردمان موثر از استفان کاوی. این کتاب هم کتابی حدودا 350 صفحه است و خواندنش نیز آسان نیست. آیا هیچی از این کتابها را یک روزه می من که شک دارم. من که نمیتوانم من نمیتوانم یک روز کامل را صرف خواندن کتاب کنم. شرط میبندم که شما هم نمی توانید. اما آیا می توانید به اندازه ارزش یک سنت کتاب بخوانید؟ مثلا ده صفحه نمیدانم شما از خواندن ده صفحه از یک کتاب چقدر مطلب یاد میگیرید. شاید بسیار زیاد شاید خیلی کم. فرض کنیم که به سختی از لابلای آن صفحات چیزی یاد می گیرید. اما اگر امروز می توانستید ده صفحه بخوانید آیا فردا هم می توانستید ده صفحه بخوانید؟ البته که می توانستید هر کسی که خواندن بلد باشد می تواند این کار را انجام دهد. اگر این کار را انجام دهید، آیا زندگیتان در همان روز اول تغییر می کند ؟ نه. و اگر آن ده صفحه را نخوانید، آیا زندگیتان شروع به از هم پاشیدن می کند؟ البته که نه؟ اما افراد موفق کارهای را انجام میدهند که افراد ناموفق تمایلی به انجام دادنشان ندارند. حتی زمانی که به نظر می رسد، هیچ تفاوتی ایجاد نمی کنند. آنها مدتی نسبتاً طولانی آن کارها را انجام می دهند، تا زمانی که اثر مرکب شروع به تأثیرگذاری گذاری می کند. اگر شما روزانه ده صفحه از چنین کتابهایی را بخوانید و به مدت یک سال هر روز این کار را انجام دهید، تقریبا دوازده کتاب قدرتمند، شگفتانگیز و دگرگون کننده زندگی را مطالعه خواهید کرد و ذهن شما پر از استراتژیها و دانشی خواهد شد که برای ایجاد سطح جدیدی از موفقیت لازم است. شما عقاید و اندیشههای میلیونرها را جذب خواهید کرد. اما برای انجام دادن این کار، شما باید آن ده صفحه را بخانید. شما باید با یک سکه یک سنتی شروع کنید قدرت یک درصد ممکن است بگویید صحبت کردن درباره سکه که هر روز ارزشش دو برابر می شود آسان است اما در زندگی واقعی کسی نیست که به من پیشنهاد دهد هر روز پولم را دو برابر می کند. حرف شما کاملا منصفانه است بیایید این معادله را تغییر دهیم برای چند دقیقه این دو برابر شدن و بهره مرکب را فراموش کنید در عوض بیایید هر روز فقط یک سنت اضافه کنیم هیچ دو برابر شدن جادویی یا بهره مرکبی وجود ندارد فقط همان اقدام ساده اضافه کردن یک سنت به صورت روزانه و مکرر بیایید تصور کنیم که هر روز در تمام حوزه‌های دیگر زندگی که برایتان مهم هستند یک کار ساده مشابه انجام می دهید. مثلا به شادیتان، به درکتان از خود، به دوستیهایتان، به سلامتیتان، به مطالعاتتان و هر مهارت و حوزه دانشی که دنبال می کنید، به اندازه ارزش یک سنت اضافه می کنید. چگونه به اندازه ارزش یک سنت به شادی و دانشتان اضافه کنید؟ به این صورت کلمه سنت مخفف کلمه سنتوم به معنی یک صدم است. یک سنت یک صدم از یک دلار است. بنابراین بیایید در هر حوزه از زندگی که میخواهید در آن بهتر شوید یک درصد از ارزش کنونیتان را به آن اضافه کنید. در انتهای سال با اضافه کردن روزانه یک درصد افزایش خالص نه بهره مرکب چقدر به آن اضافه کرده اید. در مجموع سی پنج درصد به عبارت دیگر نیم برابر. اگر اقدامات کوچک شما، مانند آدتهای شادی، استفاده از کلمات مثبت، شرکت در دوره های آموزشی و سمینارها، ورزش کردن، مطالعه کردن و غیره، هر یک نماینده یک درصد بهبود در آن حوزه باشند، در مدت یک سال سطح پیشرفت شما بیش از سه برابر خواهد شد. آیا فکر می کنید بتوانید خودتان، سلامتیتان، شادیتان، دانشتان، مهارتهایتان، تقضیتان و ارتباطاتتان را روزانه فقط به اندازه یک درصد بهبود بخشید؟ این تغییر انقدر برتری خفیفی است که ممکن است حتی ندانید چگونه باید آن را اندازه بگیرید. اما اگر فردا دوباره همان کار را انجام دهید و همچنین در تمام سال بعد نیز هر روز انجامش دهید، چه می شود؟ در روز اول شما به اندازه یک صدم بهتر خواهید شد که به قدری کوچک است که احتمالا تشخیص غیر ممکن است. در روز دوم میزان پیشرفت شما دو صدم خواهد بود و در روز بعد سه صدم هنوز هم بسیار اندک و تقریبا نامشهود است. به همین دلیل است که مردم از رفتن به باشگاه ورزشی انصراف می دهند. از تمریناتشان دست می‌کشند و حتی از مربیشان خدافزی نمی کنند. این که سه صدم برابر لاغرتر یا سه صدم برابر خوشندامتر شده باشید چقدر احساس خوبی دارد؟ چرا به خودتان زحمت دهید؟ با این حال با ادامه دادن آن مسیر و اضافه کردن روزانه فقط یک صدوم در انتهای سال شما بیش از سه برابر خوشندامتر شادتر آگاهتر و ماهرتر خواهید بود سه برابر آن هم فقط در مدت یک سال و شما چگونه این کار را انجام می دهید؟ با تلاشی دو یا سه برابر سخت گوشانه تر؟ نه. گذشته از اینها شما همین حالا هم تلاش میکنید. همه ی ما در تلاش هستیم. این موضوع ربطی به تلاش بیشتر ندارد. خب شاید کمی تلاش بیشتر لازم باشد. اما فقط یک درصد. سکه ی پسنداز شده ما درباره اضافه کردن روزانه فقط یک سنت صحبت کردیم. اما موضوع این است که وقتی هر روز یک سنت اضافه می کنید فقط آن یک سنت را اضافه نکرده اید، چرا که بهره مرکب نیز اتفاق می افتد. درست همانطور که این اتفاق در حسابهای پسنداز رخ می دهد در ارتباطات، مهارتها، سلامتی و هر چیز دیگری که تلاشتان را وقفش می کنید نیز رخ می دهد. فرایند رشد مرکب می شود، مرکب شدن فقط ماهیت و سرشت سنبل آبی نیست، بلکه ماهیت زندگی است. احتمالاً بارهای این عبارت را شنیده اید هر سکی ای که پس انداز می کنید مانند این است که یک سکه درآمد داشته اید این عبارت یکی از آن چیزهایی است که مردم به زبان میآورند بدون اینکه به دقت درباره آن فکر کنند اگر این بارد درست بود، آنگاه یک سنت پسنداز شده فقط یک سنت نبود. هر سکهی که پسنداز می کنید، مانند این نیست که فقط یک سکه درآمد داشته اید. زیرا یک سنت پسنداز شده هزار دلار ارزش خواهد داشت اگر آن را به مدت زمان کافی و با نرخ بهره مناسب پسنداز کنید. اما شما باید با یک سکه یک سنتی شروع کنید و همین نکته کنای آمیز ماجر است. میلیاردها دلار بدهی شخصی و نداشتن هیچ هیچگونه پسنداز چشمگیری در میان مردم ایالات متحده به آن راه نرفتهی برمی گردد که در این مورد همان سکه یک سنتی است که پسنداز نشده است. مسیری که انتخابش بسیار آسان است اما در عین حال انتخاب نکردنش هم بسیار آسان است. فرض کنید در حال قدم زدن هستید و یک سکه یک سنتی می بینید. بسیار ناچیز و اندک است اصلا چرا به خودتان زحمت دهید که خم شوید آن را بردارید از آن گذشته آیا می توانید تصور کنید که به یک بانک بروید تا فقط یک سنت در حسابتان پسنداز کنید آیا می توانید تصور کنید که حساب پسنداز یا قلکتان را نگاه کنید و ببینید مانده ی حسابتان یک صدم دلار است این رقم همچون مانده حساب صفر است درست است با یک سنت چه کاری می توانید انجام دهید اگر برتری خفیف را درک کرده باشید، عملاً هر کاری میتوان انجام داد. هر روز و هر لحظه فرصت آن را دارید که انتخابهایی داشته باشید که میتوانند شما را به شخصی عالی تبدیل کنند و زندگی فوق‌العاده‌ای را برایتان به ارمغان آورند. عالی بودن چیزی نیست که مقدر شده باشد یا با یک نیروی ورای کنترل شما در سرنوشتتان حک شده باشد. عالی بودن همیشه در لحظه تصمیم است. اما شما باید با یک سکه یک سنتی شروع کنید. سکه‌های یک سنتی و بالهای پروانه. اجازه دهید داستان مردی را برایتان تعریف کنم که با شستن دست‌هایش جان میلیون‌ها نفر و به احتمال بسیار زیاد جان شما را نجات داده است. در میانه های قرن 19 آن زمان که نقش باکتری ها در شیوع بیماری ها کاملا ناشناخته بود، بسیاری از زنها ترجیح میدادند که به جای رفتن به درمانگاه بچه را در خیابان ها به دنیا آورند. زیرا میدانستند که احتمال زنده ماندنشان در خیابان بسیار بیشتر است. آنها میدانستند که به دنیا آوردن فرزندشان در درمانگاه های آن روزها به احتمال یک دهم ده موجب مرگشان می شود. در بیمارستان مرکزی وین وی جایی که پزشک متخصص زایمان مجارستانی به نام زمل زملوایس در آن مشغول به کار بود، میزان مرگ و میر در حدود یک به سه بود. زملوایس پیشنهادی غیرعادی مطرح کرد: جراحان باید قبل از عمل جراحی دستهایشان را بشویند. او به شدت مورد تمسخر دیگران واقع شد. جراحان به کارشان ادامه دادند و همچنان با دستهای آلوده کودکان را به دنیا می‌آوردند و مادرها به همان منوال میمردند. مؤسسات درمانی نمی توانستند، بپذیرند که چیزی کم اهمیت و ناچیزی مانند شستن دستها بتواند تفاوت چندانی ایجاد کند و به همین دلیل هزاران نفر از مردم گرفتار مرگ‌های مورد شدند. با این حال، زملوایس به شستن دستهایش ادامه داد. ایده ای او سرانجام پذیرفته شد و این ایده منجر به نجات زندگی میلیونها نفر در سراسر جهان شد. در حقیقت اگر به سبب ایده کوچک و ناچیز زمل وایس نبود این احتمال وجود داشت که من و شما اینجا نباشیم چرا که مادر بزرگهای ما هرگز از زایمانشان جان سالم به در نمی بردند احتمالاً عبارت اثر پروانهی را شنیدید. مثال معروفی از نظریه آشوب است که میگوید وقتی یک پروانه در امریکای جنوبی بالهایش را به هم میزند این کار میتواند زنجیری از وقایع را به وجود آورد که در نهایت منجر به یک طوفان در آسیای جنوب شرقی شود. حقیقت این است که شما چه بدانید چه ندانید اثر پروانه خودتان را میگذارید و در هر لحظه نیز این کار را انجام می دهید. یکی از داستان‌های اثر پروانه مرد علاقه من فیلمی است به نام چه زندگی شگفت‌انگیزی تاجری به نام جورج بیلی به نهایت یعص و ناامیدی می‌رسد و احساس می‌کند که زندگیش دیگر معنایی ندارد و زنده بودن یا مردنش تفاوتی نخواهد داشت در هنگام خودکشی فرشته‌ای به نام کلارنس به دیدنش می‌رود و به او نشان می‌دهد که اگر هرگز به دنیا نمی‌آمد جهان چگونه می‌شد دقیقاً به همین دلیل است که نقل قولی از کلارنس را برای ابتدای فصل قبل انتخاب کرده بودیم. اثر موجی. اگر شما هم کلارنسی داشتید که می آمد و شما را به سفر مشابهی از زندگیتان می برد، احتمالاً شما هم همان گونه می شدید. اما خارج از هالیوود کلارنسی وجود ندارد که این موقعیت را فراهم کند. این چیزی است که باید یاد بگیریم تا با چشمهای خودمان ببینیم. کوچکترین چیزها در واقع همان بزرگترین ها هستند در نظر جورج زندگیش بسیار ناچیز و بی اهمیت بود اما به هیچ وجه اینطور نبود در حقیقت همانطور که او پیبرد، اگر هرگز به دنیا نیامده بود سرنوشت شهری که در آن زندگی می کرد بسیار متفاوت می شد چهار دهه قبل مارتی مکفلای در فیلم بازگشت به آینده درس مشابهی را یاد گرفته بود بهترین داستانها همواره برای نسلهای جدید تکرار می شوند. گاهی اوقات حتی مهمترین چیزها مدتها قبل از اینکه بتوانید اثر نهاییشان را ببینید یا احساس کنید، بیهوده و عبست به نظر می رسند. مانند دست و پا زدن قرباقه درون خامه یا تماشای یک سکه یک سنتی که تبدیل به دو سنت و سپس چهار سنت می شود. چیزهای کوچک، چیزهایی که ممکن است اینگونه گونه به نظر برسد که اصلا هیچ قدرتی ندارند، میتوانند تأثیرات بسیار مهمی بر جای بگذارند. گاهی اوقات میتوانند حتی مسیر تاریخ را تغییر دهند. میتوانم با اطمینان بگویم که آنها سرنوشت شما را تغییر خواهند داد. آنها مطمئنا سرنوشت من را تغییر دادند. ممکن است بگویید اما آن فقط یک فیلم است شاید این گونه باشد اما در زندگی واقعی چیزهای مشابهی نیز رخ می‌دهد به افرادی فکر کنید که در قرن بیستم تأثیرات مثبت بزرگی در تاریخ داشتهاند جان اف کندی، جوناس سالک، مادر ترزا، اسکار شیندلر، مارتین لوتر کینگ جونیور قهرمان مورد نظرتان را انتخاب کنید و سپس به این بیاندیشید که اگر ایگنات زمل بر شستن دستها قبل از عمل جراحی پافشاری نمی کرد، ممکن بود که این افراد هرگز به این دنیا پا نگذارند. در سال 2006، بنیاد فیلم امریکا فیلم چه زندگی شگفتانگیزی را 60 سال بعد از ساختنش به عنوان تأثیرگذارترین فیلم تاریخ انتخاب کرد. بعد از تمام این سالها این فیلم هنوز هم پیام قدرتمندی در دارد زیرا چیزی است که ما نیاز به شنیدنش داریم کاری که شما انجام می دهید اهمیت دارد. داستان های شخصی از خوانندگان کتاب آل لوئیس شیکاگو ایالت ایلینویس بعد از یک سکته خفیف تشخیص اولیه دکتر این بود که احتمالا دیگه نمیتونم راه برم. وقتی که مسیر طولانی بهبودم و شروع کردم به سختی حرکت میکردم و توانایی صحبت کردن و از دست داده بودم. می دونستم که اگه بخوام به زندگی لذت بخش گذاشتم برگردم باید بر بهبودی آفتنهای خیلی کوچیک هر روزم تمرکز کنم و تو این وضعیت فلیم متوقف نشم. کتاب برتری خفیف به هم یاد داد که اگه هر روز یکم بهبود پیدا کنم کم کم میتونم به پیشرفت بزرگی دست پیدا کنم. من این فلسفه رو تو توان بخشیم به کار برستم. اول تونستم و خیلی کم تکون بدم، بعد دست، بعد بازوهامو یه کوچولو تکون دادم. امروز دوچرخه سواری میکنم و هر روز سی دقیقه روی اینترنت میل تمرین میکنم. کاملا سلامتیم برگشته و میتونم کارهای انجام بدم که بهشون علاقه دارم. دکترا به میگن نیمی از بیمارایی که دو چهار سکته از نوع سکتته من شدن حتی زنده نموندن چه برسه به اینکه بهبود پیدا کنن. تو سراسر فرایند توان بخشیم من ایمان داشتم که اگه هر روز فقط اندکی بهبود پیدا کنم کاملا بهبود پیدا خواهم کرد و همانطور که میدونستم این اتفاق رخ داد: همه اینا فقط با یه بهبود بسیار کوچیک شروع شد. جیم پاریس، ساحل دیتونا. ایالت فلوریدا شش سال پیش فهمیدم حسابدارم حدود دو میلیون دلار از شرکتمون کلاورداری کرد و شدم مدت پنج سالم تو افسردگی به سر می بردم. بعد حدود شش ماه قبل یه نسخه از این کتاب برتری خفیف و خریدم بعد از خوندنشم انگیزه پیدا کردم تا واسه بازسازی زندگیم هر روز یه قدم کوچیک بردارم. حالا دوباره به رادیو تلویزیون برگشتم و دوباره به نوشتن روی آوردم. وبسایتمو بازسازی کردم و چندین موفقیت بزرگ مالی هم کسب کردم. چیزی که فهمیدم این بود که نمیتونم گذشته تغییر بدم، اما میتونم با برداشتن هر روز یک گام کوچک در مسیر درست، آینده جدیدی بسازم. درست مانند قدرت سکه یک سنتی. حالا در نتیجه اون گامهای کوچک توی مسیری قرار گرفتم که میتونم موفقیت گذشتهمو به دست بیارم. نکات مهم موفقیت های بزرگ اغلب با شروعهای کوچک آغاز می شوند. اما همیشه باید نقطه شروعی وجود داشته باشد. شما باید از نقطه ای شروع کنید. شما باید دست به کار شوید. اگر هر روز فقط یک درصد به هر چیزی ام از مهارت، دانش و تلاشتان اضافه کنید، در مدت یک سال بیش از سه برابر خواهد شد. اما شما باید با یک درصد شروع کنید. عالی بودن چیزی نیست که مقدر شده باشد یا با نیروهایی که فراتر از کنترل شما هستند در سرنوشتتان حک شده باشد. عالی بودن...